کبرت بزرگ شدی فارغ بیکار انت ولد فلان؟ اجل ما شاء الله متا کبرت اللیل البارحة حکنتو فارغن فقلت فی نفسی لأکبر قلیلا تو پسر فلانی هستی؟ بله ماشاءالله کی بزرگ شدی؟ دیشب بیکار بودم گفتم یه مقدار بزرگ شم